بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره هنگامی که آفتاب در هم پیشیده می و هنگامی که ستارگان بی فروغ و هنگامی که کوها به حرکت افتند و هنگامی که اشتران شکمدار با حمل ده ماهی خود به حال خیش گذاشته شوند هنگامی که جانوران وحشی نمی رمند و جمع می شوند و هنگامی که بحرها مانند آتش افروخته شوند و هنگامی که روحها به بدنها یا مردم هم خوی و خسلت به هم بپیوندن هنگامی که از دختر زنده در گور شده پرسیده شود که به کدام گناه کشته شده بود؟ هنگامی که نامه‌های اعمال گشوده شود و هنگامی که پرده آسمان برداشته شود هنگامی که دوزخ شغالور گردد و هنگامی که بهش نزدیک آورده شود در آن وقت هر کس برای خود چی آماده کرده است پس سوگند به آن ستارگانی که باز می گردند راست می‌روند و گاهی پنهان می شوند. و سوگند به شب که میآید و می روند. و به صبح هنگامی که میدمند بگمان این کلام رسول یعنی فرشته علی قدر است صاحب قدرت نزد خداوند صاحب عرش والا فرمان روا و امانتکار و ای مردم یا روح همراه شما دیوانا نیست و بیگمون او را در افق روشن دید و بر تعلیم اسرار غیب بخیل نیست و نه هم این قرآن سخن شیطان رانده شده از رحمت خداوند می باشد پس به با کجا می روید؟ این قرآن نیست مگر پندی برای همه جهانیان برای آن کسی از شما که بخواهد در راه حق پایداری کند و شما نمی خواهید پایداری کنید مگر آنکه خدای پروردگار جهانیان بخواهد یعنی به شما توفیق عنایت کند